حکایت ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت ماری تو که هر را ببینی بزنی یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. زورتر پیش میگود با ما با خداوند قیب. نرود زورمندی مکن بر اهل زمین تا دعایی بر آسمان نرود. حاکم از گفتن او برنجید و روی از نصیحت او در هم کشید و بر او التفاتی نکرد تا شبی که آتش مطبخ در انبار هیزمش افتاد و ساغر املاکش بسوخت و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند، اتفاقا همان شخص بر او بگذشت و دیدش که با یاران همی گفت، ندانم این آتش از کجا در سراغ من افتاد، گفت از دل درویشان، هزر کنز درد درونهای ریش که ریش درون عاقبت سر کند، به هم برمکن تا توانی دلی که آهی جهانی به هم برکند. بر تاج کی خسرو نوشته بود چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت. چون که دست به دست آمده است مرک به ما، به دستهای دیگر همچنین بخواهد را.